شاه سوار بر باره باد قسمت پنجم هیچ به یاد ندارم چه مدت خوابیده بودم وقتی بیدار شدم سلطان هنوز در خواب بود. منظم و آرام نفس می کشید و چون گربهی خورخور می کرد چندی خیره پاییدمش صورتش از چروک که گذشت سالیان پر و بیرنگ و خسته به نظر می آمد. تا آن ساعت از این فاصله و به این دقت به چهره سلطان خیره ننگریسته بودم به نظر میآمد تا در این اندک زمان که از قلعه بیرون آمده بودیم به اندازه سالیان سال پیر شده بود دلم بر او سوخت هرچند چندی این سالیان ندیده بودم که او بر هیچ کس دل بسوزاند همیشه با خاطر آسوده و خیالی فارق از سخت ترین مصائب دیگران میگذشت اما اگر چهره او در هم میرفت یا آثار خشم بر صورتش می نشست باید حدس می زدند که خطر در کمین اوست آنقدر در بند احوال سلطان بودم که هیچ ملتفت تاریکی بیرون نشدم وقتی برخواستم تا نزد سلمان بروم تازه دریافتم که ظلمات نه فقط صحن حیات که کاربان سرا و همه جا را در بر گرفته است هیچ کس تر آنجا نبود و کور سوی نوری از دریچه اتاق سلمان به بیرون می تراوید بر ایوان ایستادم و پیرامون را نظاره کردم نه چیزی به چشم می آمد و نه حتی صدایی جز بال زدن پرندگان شبگرد شنیده می شد تنها جقتی در دوردست می خواند آنقدر بر جلو خان ایوان ایستادم تا در اتاق سلمان باز شد و او سینی غذا بر دست بیرون آمد شام ما را مهیا کرده بود و بی اینکه ایوان را نگاه کند رو به سوی پله ها می آمد. سلطان را بیدار کردم تا شام را تناول کند هنوز مخمور بود و از اینکه ناگهان خود را در اتاق میدید سخت حیرت کرد گفتم که مست لا بود و بر پشت او را به اتاق آورده بودم حیرتش افزون شد و گفت کافور شراب که قرابه‌ی بیش نبود در مجلس اشرت شاهانه همیشه قرابه‌ی بیش از وزیر می نوشیدم تا حد و مرتبه‌اش همچنان فروتر از من باشد او مست می‌افتاد و من هنوز هوشیار بودم از ترس جان از دست و دلم رفت این حرفها در حضور سلمان جان را به باد میداد اما از اقبال مساعد سلمان گمان برد که خواجهم هنوز هوشیار نیست و از تأثیر شراب هزیان می گوید زود سلمان را روانه کردم و در را بستم. سلطان لب به غذا نزد اما فرمان داد که خلعتهای های شاهانه را از درون بار بیرون بیاورم و برو بپوشانم به کار دیگری پرداختم و چنین نمودم که فرمان او را نشنیدم هر آن احتمال میدادم که سلمان برای بردن سینی غذا بیاید حرفهایش را به حساب هزیان مستانه گذاشته بود اما با دیدن آن همه جامعه زربفت دیگر به کدام آذرو بهانه می توانستم حقیقت راکتمان کنم. به تمامی اسرار ما بر آفتاب میافتاد آنگاه هم جان او در خطر فنا بود و هم زندگانی من دست خوش هبا هرچه سلطان به اصرار فرمان داد در بار نگشودم لقمه آماده میکردم و به طرف دهانش میبردم اما او به قهر دهان خود نمیگشود پس به ناچار لقمه را خود میخوردم آنقدر این شیوه را پی گرفتم تا شام به اتمام رسید. ظرف را در سینی چیدم و سینی را بردم پشت در در ایوان گذاشتم. سلطان خشمگین شده بود. من از جا نمی جنبیدم. تا اینکه سلمان آمد و ظرف را برد. پس برخواستم و در اتاق را بستم. جامعه های زربفت و کفش جواهر نشان و تاج مرسای سلطانی را بیرون آوردم. چشمان سلطان با دیدن آن اشیاء درخشید و برخاست جامعه زربفتی به تن او پوشاندم. آن اندازه شادمان گشته بود که خود کفش جواهر نشان را به پا کرد. پس تاج را برداشت و بر سر گذاشت. درخواست کردم که بنشیند. گفت بر کدام تخت؟ در دل خندم گرفت بعد فرمان داد که با جامعه خواب و بالش تختی تعبیه کنم چون نمی‌خواستم بیش از این بیستد فرمان بردم زود تخت لهافینهی محیا کردم سلطان با عبوحت و شکوه بران نشست و تکیه داد به دیوار دوغابی به ناگهان احوال سلطان دگرگون شد. شکوه و عظمت از او ساطع میگشت. سرش را استوار نگه داشته بود و سینش را جلو داده بود. کف هر دو دست را بر برامدگی زانو نهاده بود و خیره شده بود به من. بعد دست راستش را به آرامی بلند کرد و خطاب من با صدایی که شکوه شاهانه یافته بود گفت کافور از این ساعت تو وزیر من هستی. بگذار آن مرده که قلتبان برود به جهنم سیاه. توی وزیر دلخواه ما. سلطان پس از نسب من به وزارت امر و نهی در امور ولایت‌های قلمرو حکومتش را آغاز کرد هر لحظه فرمان بر ازل حاکمی و نصب دیگری به جای او می‌داد فرمان میراند که قلم و کاغذ آماده کنم و به کاتب بگویم که فرمانهایش را بنویسد و به اطراف و اکناف سرزمین بفرستم من گفتم اما حضرت خداوندگار پس از نسب من به وزارت کاتبی دیگر در درگاه نیست سلطان گفت تو هنوز آداب وزارت نمیدانی. در درگاه ما برخیز و سخن بگو اما در باب کاتب مگر مسعود دبیر مرده است به او بگو بنویسد اگر او مرده است به درک اسفل سافلین به کافور تقریر می کنم شبی دیگر سلطان باز لباسها را خواست در بار را گشودم فرمان داد تا تمام لباسهایش را بیرون بیاورم و بوریا نزد او بگسترانم گسترانم از بخت و اقبال خوش شام را خورده بودی مسلمان ظرفها را برده بود و دیگر خطر بازگشت نبود. دو جامعه زربفت سیاه و قرمز بود. سلطان هر دو جامعه را پوشید. این عمل او سخت مرا به حیرت فرو برد و ترس من از وضع روحی او تشدید شد. ترسی که از مدتها پیش به دلم افتاده بود. پس جامعه خز شوشتری بیگریبانی را بر آنها پوشید و شمشیری با غلاف قرمز و بند نقرهی سفید به کمر بست. دو تبرزین زرین به بندهای دو طرف سینش بست و سرانجام دستور داد تا تاج گوهر نشان را که درشته گوهر منظوم بر گرد آن کشیده بودند بر سرش بگذارم. تاج قدری گشاد بود. لنگی کوهنه یافتم و بر سرش بستم تا تاج بر آن بیستد. به زحمت برخاست، اما زود بر تخت افتاد. تخت که نه جامعه خواب ماد و تن. قصد داشت که برود و در آینه کوچکی که بر تاقچه بود خود را بنگرد. چون نتوانست از تخت برخیزد فرمان داد تا آینه را نزد او ببرم. تا این را پیش روی او گرفتم به خشم فریاد برآورد ابله این چگونه تاج بر سر است؟ چرا تاج را وارونه گذاشته ای؟ تاج را برگرداندم. دستش را بالا برد و به درفش ها اشاره کرد. دو طرفش بود. یکی سفید و دیگری زربفت. پدرم میگفت گفت که خود به چشم دیده بود آن روزی را که رسول خلیفه آمد و خلعتها و عهد و لبا آورد. رسول خود این دو درفش را به دست سلطان داد. درفش سفید به نشانه تسلط بر شرق و درفش زربفت علامت سلطنت بر غرب. درفش ها بلند و سنگین بودند و او هر دو را میخواست. خواست. هر دوگان را یک به یک بردم و به دستش دادم. باز کوشید تا برخیزد و درفش ها را برافراست اما نتوانست حتی نشیمن از تخت لحافینه خود بردارد هر دو درفش را به دو دست محکم گرفته بود اگر به جد میکوشید درفش سفید را راست نگه دارد درفش زربفت کج میشد و اگر زربفت را استوار و محکم می گرفت درفش سفید رو به زمین میرفت وقتی پی بورد پیبرد نمیتواند هر دو را درست و استوار نگه دارد فرمان داد که نوک درفش ها را تکی بدهم به دیوار تا نیفتند و خود نیز پشت داد به آن پیاله آب خواست من گفتم باید از سلمان آب بگیرم اگر بروم سراغ او به احتمال او نیز به دنبال من میآید به اشاره سر گفت آب نمیخواهد پس خطبه کوتاهی خان دو لقب به من داد خیر المله و سمین الدوله و گفت از این ساعت به کمک من این درفش سفید را میگیری تا جانشین من باشی. برخیز و استبانه درفش را کمی پایین تر از دست من بگیر. برخواستم. در سیمای سلطان غرور و استواری با شکوهی به چشم میخورد. سر خود را هنوز تکیه داده بود به دیوار. به گمانم قادر نبود که سرش را از دیوار جدا کند. اگر سرش را پیشتر میآورد به احتمال با ها به زمین سقوط می کرد. پس به اندازه یک وجب زیر دست او استوانه درفش سفید را گرفتم. به یاد ندارم چه مدتی در این حال ماندیم وقتی دیدم درفش رو به زمین میرود به شتاب رفتم و آن را نگه داشتم و از دست سلطان بیرون آوردم مقاومتی نکرد او را نگریستم خفته بود درفش زربفت را بر زمین گذاشتم پس درفش سفید را نیز بردم به زحمت آنها را در بار گذاشتم پس از آن در خرجین را گشودم و تاج را نیز از سر سلطان برداشتم و در آن خرجین نهادم. شمشیر و تبرزین را یکی پس از دیگری از تن او جدا کردم نوبت خلعتها رسید به سختی آنها را از تن او درآوردم اصلا بیدار نشد تمام خلعتها و اشیاء دیگر را در بار گنجاندم پس سلطان را در آغوش گرفتم و بر بوریا خواباندم تا جامعه خواب او را بگسترانم شادمان شدم که هیچ جنبشی نداشت وقتی او را برداشتم تا در بستر به خوابانمش آهسته ناله ای کرد گفت خه خه به گمانم مرا خطاب میکرد و میخواست بگوید خیرالمله پاسخی نگفتم. رها کردمش تا خوب بخوابد. بعد بستر خود را نیز گستردم و فتیله فانوس را پایین کشیدم و به بستر رفتم.